بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به بیت 101 کتاب که از بیت 101 تا بیت 113 کتاب بحث الجد و هست. یا الجد مع الاخوه زمانی که پدر بزرگ در مسئله وجود داشته باشه و اخوه منظور از جد پدر بزرگ پدری حالا چه پدر پدر باشه چه پدر پدرش باشه امینجوری بالاتر و منظور از اخوا برادران و خاهران میت چه شقیقه چه پدری اما مادری نه طول برادران و خواهران مادری یا اولاد اوم به وسیله پدر بزرگ ساقط می شود خب بيت سديوكم بيجي ونبتدل آن بما أردنا في الجد والإخوتي إن وعدنا وشوري بيكنيما الآن بأنشك خاصي در رابط بات جد وإخوة إذ وعدنا زماني كي ذاعد دادي بعل اگر ياد مباركتون باشا در همين كتاب بيت الشاسم كه وحكمه وحكمهم سيأتي مکمل البیانی فی الحالت ها همدود در واسه زوال فروز گفت که حکم پدر بزرگ به تنهای اومد زمانی که همراه با برادران نوشه بال برادران هم به تنهایی اومدند در احسابه ها حالا موند زمانی که باهم در یک مسئله باشند چرا؟ چون اگر در یک مسئله خود پدر باشه با برادران که پدر برادرانو ساقط میکنه ارث نمیبرند ولی اگر پدر بزرگ باشه با برادران گروهی از فقها ها اند پدر بزرگ همان پدر است و برادران را ساقط میکند از میراس گروه دیگر جمهور فقها ها هستن مالک شافعیه و امام احمد اینا ها میگویند که برادران ساقط نمیشوند بسیل پدر بزرگ بلکه ارث میبرند البته گروه از شافعیه هم گفتند که ساقط میشند و ارث نمیبرند وی مذهب شافعیه جمهورش بر همینند که ارث میبرند برادران همراه با پدر بزرگ اینها گفتند زیرا همانطور که پدر بزرگ از طریق پدر به میت وصل می شود، برادران هم به همان شکل به همان اندازه مساوی با میت و حسیل پدر وصل میشود اگر پدر میتواند برادران رو برادران و خواهران میت رو صاقت کند مستقیم پدرش هست. ولی پدر بزرگ نه پدر بزرگ با واسطه پدر است. و برادران هم اتفاقاً با همین فاصله به وسیله پدر به میت وصل میشوند. اگر اگر فقه رو به شکل مقاصدی نگاه کنیم و میر مقاصد میراث رو نگاه کنیم می تواند ارجح باشد قول آن دست هایی که می گویند برادران ساقط نمی شوند و همراه با پدر بزرگ میبرند. می برند که این مسئله در, بیان، در میان صاحب اختلافی بود در میان فقها اختلافی بود و تا امروز تا امروز میان فقهای های امت اسلامی همچنان اختلاف وجود دارد در هر صورت این کتاب طبق مسئله امام بزرگوار امام شافعی نگاشته شده است و برادران میت همراه با پدر بزرگ ارس میبرند و ساقط نمیشوند در این درس همین موضوع رو مطرح میکنند که چه حالاتی دارند میگون ابتده الان به ما اردنا و شروع میکنون الان به انتی که خاصیم در رابطه با جد و اخوا زمان که وعده دادی یعنی در بید شسوم وعده داد که حالت کامل اینها جداغانه خواهد آمد و الان اون وعده رو داره و وفا میکنه میگه فا القی نحو ما اقول و به سمت آنچه چی که میگویم گوشت را خوب ببر سمعا مفقولة فألقيها سكفائلش عن تيموس تارس فألقي السمعة نحو ما أقوله آه فألقي نحو ما أقوله سمعة بالي على في إطلاقهاست إن در السمعة هست ميجي خوب جوشكم وجمع حواشي الكلمات جمعا وخب بسخن گوش فراده ذهنت تو رو در حواشی کلام در اطراف کلام در تمام سخن جمع کن تا بتوانی سخن رو بفهمی وجمع حواشی الكلمات جمعه ذهنت رو در حواشی کلمات در اطراف کلمات در به خوبی جمع کن تا بفهمی تقریبا بحث الجد مع اخوه مشکل هست ولی اگر دقت بشه مشکل نیست. مخصوصا با وجودی که این کتاب نظم هست، شعر هست ولی خیلی ساده و سادر جد و اخوارو ترین چند بیت خیلی روان، خوب توزید آده. رحمت کنه خداوند ایشان را. میگه واعلم به انال جد و احوالی انوی که انهن و الاتوالی بدان که پدر بزرگ داره حالت هاست به بمنی صاحب و بدان که پدر بزرگ همانا پدر بزرگ دارای حالت هاست اون که انهن على التوالی خبرت میکنن از تمام این حالت ها شکل توالی و پدر بی خب حالت اول شو میگه در بیت ست میگه یقاسم الاخوت فی هن اذا لم يعد القسم علیه بالعذاب میگه به شکل مقاسمه ارث میبهره با برادران شریک میشه با برادران تقسیم میشه در ارث با برادران زمانی که لم یعود القسم علیه بالعذا مقاسمه برش عذیتی نباشه به زررش نباشه کلان این دو حالت داره پدر بزرگ همراه با برادران دو حالت داره یک در اون مسئله صاحب فرض وجود نداشته باشه دو صاحب فرض وجود داشته باشه حالا چه صاحب فرض وجود داشته باشه چه نداشته باشه اگر مقاسمه به نفع پدر بزرگ باشه به شکل مقاسمه عرص میبره یعنی یکی از برادران حساب میشه پدر بزرگ یکی از برادران حساب میشه پدر بزرگ مثلا شخصی فوت کرده است یک پدر بزرگ داره با یک برادر اینجا اگر ما بیاییم یک سوم مالو به پدر بزرگ بدیم ضرر میکنه یک 3 میبره 2/3 شو برادر من 1 میبره اینجا چیکار میکنیم اینجا مقاسمه به نفع پدر بزرگه پس میایم مقاسمه انجام میدیم چطوری نصفشو میدیم به برادر نصفشو میدیم به پدر بزرگ دقت کنیم در بیت 24 رو میگه یقاسب الاخ وتفيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذع میگه مقا به شکل مقاسمه ارث مین جد، جات فيهن دارون حالت ها اذا لم يعد القسم عليه بالاذى مقاسمه به ضررش نباشد بس اگر در مسئله صاحب فرض نباشد مثل مين مثالی که زدیم پدر بزرگم برادر خب یا یک سوم میبره یا به شکل مقاسمه اگر یک سوم برمش بنفش بود یک سوم بشمیدیم اگر مقاسمه بنفش بود مق... به شکل مقاسمه بشمیدیم که در این مسئله ای که من گفتم مقاسمه بنفش بود حالا اگر مقاسمه بنفش نبود اون موقع ثلث کامل رو میبره که در بیت 155 اینو بیان میکنه فتارا یا یاخذ ثلثا کاملا ان كان بالقسمه عنه نازلا میگه حالت اول شو بیان کرد که به شکل مقاسمه می برد و گاهی یک سوومه کامل رو میبرد فتارتا یعخوضو ثلثا کاملا و گاهی یک سوومه کامل رو میبرد چه زمان؟ امکانه بالقسمتی عنه نازلن زمانی که مقاسمه کمتر از یک سووم بود در این سال دقیق کنید شخصی فوت کرده یک پدر بزرگ داره با سه تا برادر با هم میشن پدر بزرگ و سه تا برادر میشن 4 تا اگر به شکل مقاسمش بهش بدیم یک چهارم گیرش میاد چون مال 4 جا میشه دیگه اینجا دیگه چکار میکنیم اینجا میایم یک و بهش میدیم باقی مانده رو میدیم به برادرها بله همین رو میگه ویا اقوتا فتارتا یأخذو ثلثا کاملا انکانا بالقسمت عنه نازلا پس یک سفون مکامل میبره اگر مقاسمه از یک سفون کمتر بود این دو حالت چه زمانی؟ این لم يكن هناك دوسی ها من اگر در مسئله صاحب السهم نبود اسمین مسئله که گفتیم؟ اولیک در مسئله صاحب سهم بود مثلا مادر بود همراه این دو شوهر میت بود یا زن میت بود اونجا داستان فرق میکنه پس این دوتا حالت تو توضیح داد البته اون مقاسمش اگر به بود در هر صورت چه صاحب فرض باشه چه نباشه میبره ولی شماره پنج که گفته بود سلسه کامل و چه زمان میبره هناك حامی. اگر صاحب فرض نبود فقط نه به این باحی استفهامی قانع بشو باب واضح کردنم برایت عن از سوال کردنم یعنی از همینی که برایت توضیح دادم قانع بشو اکتفا بکن دیگه سوال نکن یعنی برایت واضح توضیح دادم خوب حالت دیگه رو بیان میکنه و تارتن یقخوذو ثلث الباقی بعد ذو الفروز والارزاقی وگاهی موقع سلس باقی رو میبرد وطارتن یحخوزون سلس الباقی وگاهی سلس باقی یک سفهم باقی. باقی رو میبرد بعد زوی و الارزاق بعد زیم که زوی الفروز والارزاق صاحبه سهم صاحب ها صاحب خودشون بردن این زمانیه که در مسئله صاحب سهم باشه شخصی فوت کرده مادر دارد پدر بزرگ دارد و برادر اینجا دیگه مادر که سهمش رو برد میاد پدر بزرگ یک سوم باقی رو میبره چه زمان؟ زمانی که اگر مقاسمه بکنند به زررشه مثلا مثالشو میزنیم شخصی فوت کرده یک مادر داره یک پدر بزرگ داره پنج تا دا برادر داره خب اگر ما بیایم به شکل با قاسمه بدیم که زرر میکنه پس اینجا یک شیشوم مادر رو میدیم بعد از اون یک سوم باقی مندر رو پدر بزرگ بر میداره و هرچیمون من برادران میبرم بیت سد میگه و تارتن یع خضوص الباقی بعد دو الفروز و الارزاقی هادا چه زمانی یک سوم باقی رو میبره هذا اذا ما كانت المقاسمه تنقصه انذاك بالمضاحمه. این زمانی است که مقاسمه نقص بکنه سهمش رو از اون از یک سوم یعنی این زمانی است که نصیبش با مقاسمه کمتر باشه از یک سوم باقی پس زمانی که اگر به شکل مقاسمه بش بدیم ساهمش کمتر از یک سفومه باقی میشه در این صورت یک سفومه باقی رو بشویدی و حالت بعدی پدر بزرگ کیه؟ و تارتن یأخلو صدس المالی و ليس عنه نازلا بحالی و گاهی یک ششومه کل مال رو میبرد این چه زمانه؟ این زمانیه که بعد از این که زاویه فروش صحبشونم بودند کمتر از یکشیشون بمونه خب مثلاً آل میشه یکشیشون بشداده میشه یا یکشیشون مونده یکشیشون مال مونده باشه یا هیچ نمونده باشه مثلاً آل میشه و یکشیشون میبره اما اگر مال زیاد موند بعد صاحب فرزها بگونه ای که یک ثومه به نفش بود یا یک ثومه کل مال به نفش بود اون موقع همونا رو میبره ولی زمانی که هیچ کدوم به نفش نباشه در نهایت یک ششمه کل مال رو میبره بحالی ولی از یک دیگه کمتر ترفه در بزرگ در هیچ حال نمی بره ببینید و میگه: و تارتر یک خدوسوت سلمالی و گاهی یک شیشم مال رو می بره و لیسه انه نازلا بحالی و کمترز یک شیشم در هیچ حالت په در بزرگ ارث نمی بره پس پدر بزرگ در هر صورت در هیچ صورتی سهمش از کمتر از یک 6 مال نمیشه. ما بیایم ببینیم کدومی که بنفشه. اگر بدون صاحب فرض بود یا مقاسمه ارث میبره یا یک 3 می‌بره. هر کدوم بنفش بود. اما اگر در مسئله صاحب فرض بود یا به شکل مقاسمه میبره اگر به نفش بود اگر نه یک سوفوم باقی مانده رو میبره و اگر نه اینا ممکن نبود اون موقع یک ششم کل مالو رو در هر صورت میبره و کمتر از این دیگه سهمش نمیشه و هو معل ایناسی اندالقسمی خب مثال بزنیم درچه طولانی تر میشه بهتر است شخصی فوت کرده است مادر داره با صاحب فرض بدون صاحب فرض که قبلا مثال زدیم و شخصی فوت کرده یک برادر داره با یک پدر بزرگ اینجا مقاسمه میشه نصفه به این میدیم نصفه به اون یک ش... پدر بزرگ داره و تا دا برادر اینجا دیگه یک سفومه کل مالو به پدر بزرگ میدیم باقی رو به برادرها چون اگر مقاسمش کنیم به ضرر شد این زمانی بود که صاحب فرض در مسئله نبود اما اگر در مسئله صاحب فرض باشه مثالی میزنیم شخصی فوت کرده شخصی فوت کرده مادر داره پدر بزرگ داره و سه تا یا چهار تا سه تا برادر داره مادر داره پدر بزرگ داره و سه تا برادر داره و پولش هم هست پونزده هزار تومان مثلا اینجا در این مثال مادر یک ششم خودشو میبره که همون دو پونسد بشه باقی مانده می بینیم یک پدر بزرگ هست و ستا برادر یعنی دوازده هزار و پونسد. اگر مقاسبهش کنیم یکی پدر بزرگ هست و ستا برادر با هم میشن چهار تا دوازه هزه و پونسد تقسیم بر چهار میشه سه هزار و سد و بیس و پنج آه ولی اگر بیام سلح س باقی رو بهش بدیم یعنی دوازده و پنجصد تقسیم بر سکنیم اون موقع چهار و خوردی گیرش میاد و اگر بیام یک شیشو به کل معلو بش بدیم اگر بیام یک شیشو به کل معلو بش بدیم یعنی دوازده و پنجصد که باقی منده رو بیام یک شیشو رو بدیم پانده میگم کل مال الان دیگه یا مقاسمه از باقی مانده هست یک ثومه باقی گیرش میومد چارو خوردی حالا بیایم یک شیشون کل مال رو یعنی از پونزه هزار یک شیشون بشبیدیم پونزه هزار تقسیم بر میبینیم دو میشه میبینیم که اگه یک شیشون مال بدیم گیرش میاد دو پونسد. یک سوم باقی رو بهش می دادیم و خوردی گیرش می اومد به شکل مقاسمش می کردیم از دوازه و پونسد دوازه و پونسد و چار جام می کردیم سه خوردی می شود. پس کدوم یکی به نفشه دلیل مسئله می بینیم که یک سوم باقی به پس یک سوم باقی رو بهش می دیم. خب بریم جلوتر و هو معا اندل قسمی مثل اخن في سهمه والحکمی در بیت صدودهم دهم میگه و پدر همراه با اناس منظور خاهران شقیقه خاهران پدری ميت و هو مع الاناس عند القسم و ميت همراه با زنان یعنی خواهران شقیقه میت و خواهران پدری میت این دلقسم هنگام مقاسمه مثل اخن فی سحمهی و الحکمه دقیق بمانند برادر است در سحمش و در حک به چه شکل؟ یعنی چطور زمانی که یک برا... ف... اصلا پدر بزرگ یک برادر فرض کنیم زمانی که همراه با خواهران میته شخصی فوت کرده یک مادر داره یه پدر بزرگ داره چی پدر بزرگ داره؟ وای خواهر خوهر شقیقه مادر یک شیشومشو میبره اینجا ما چکار میکنیم؟ پدر بزرگو برادر حساب میکنیم که خوهرشو چکار میکنه؟ عصبه میگردانه و لذکریم مثل حض الانثین میشه پس یک شیشومو برد باقی مندر برای پدر بزرگ میشند و اون خواهر به شکلی که به شکلی که اینجا پدر بزرگ دو برابر خواهر میبرد که لیل مثل حذر انفیه لیل مثل حذر انفیه پس این مسئله رو بیان در این بیت میگه و هو معا الاناثی اندالقسمی مثل اخن فی سحمهی و الحکمی و پدر بزرگ همراه خواهران شقیقه یا پدری هن قاموا مقاربة مثل برادرس ساهم يعني اللي ذكرى مثل هذا العنصر والحكم ودرحكم هم إنجا أن ترك ميكون برادر خاهر شو أسمه ميكر في دربزرق هم إنجاء إن خاهره ما يتجشى ميكونه أسمه ميكونه ودرسها مثل برادرك دو ورابرش ميبرة باله إلا ماكر طريق حالت إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال فلا لها يصحبوها. مگر همراه با مادر مادر رو حجب نقصان نمیکنه پدر بزرگ اینجا مثل برادر نیست بلکه بل سلط المالی لها یصحبها بلکه یک سوم مال مال مادر است که اونو میبره صاحبش هست همراهش هست یعنی ازش جدا نمیشه صاحبشمون یک سوومه دیگه یک شیشوم نمیشه ببینید در شکل عادی زمانی که یه شخصی فوت کرده باشد یک برادر داشته باشد و یک خاور و یک مادر، اینجا مادر میبره یک شیشه، یک سوپ نمیبره چرا؟ چون گفتیم مادر زمان یک شیشه میبر، یک سوپ میبره که میت فرزند نداشته باشه و همچنین از یک برادر و خاور بیشتر نداشته باشه. اینجا میبینیم که دوتا داره، یک برادر و یک خاور. پس سهم مادر میشه یک شیشه. ولی زمانی که پدر بزرگ باشه به جای برادر اینجا در مقاسمه فدر بزرگ مثل کیه سبراادره ولی در محجوب کردن مادر به برادر نیست. این اللا رو آورد این استثنا رو توزییمه میگه ال مععلم به فلای فلا ها جوز همراه مادر مادر رو حجم نقصان نمیکنه سش از یک ششم به یک سوم ن از یک سوم به یک ششم نمی بره. بلکه با, وجو... با این وجود که فدر بزرگ وجود داره و خواهر، بل كل ثلث لها يصحبها صاحبها بل كيكسفون مال ماله ما دراس. فسين فرق دار. وحسب بن الأبي لدى الاعداد وحسابكن فرزندان فيدرة. وحسب بن الأبي لدى الاعداد وحسابكن فرزندان فيدرة. هنگام حساب کردن برادران شقیقه وحسب بن الابی لد الاعدادی وحساب کل برادران پدری رو هنگام حساب کردن یعنی اگر در یک مسئله ای پدر بود که پدر بزرگ بود و پدر و, برا و برادر شقیقه منیت بود و برادر پدریش اینجا برادر رو حساب کن برادر رو چکار کن؟ که آیا پدر بزرگ اینجا یک ثومه مال رو ببره به نفشه یا مقاسمه بشه میگه ما میام اینجا برادر پدری رو حساب میکنی شخصی فوت کرده پدر بزرگ داره برادر شقیقه داره با برادر حق... پدری حسابش میکنیم در نتیجه میایم پدر بزرگ و یک ثوم مالو میدیم یک ثومشو بر میداره، تمام شده رفت بعد از این خب برادر شقیقه برادر پدری رو محجوب میکنه برادر پدری رو محجوب میکنیم دو ثوم مالو میدیم به برادر شقیقه در حساب کردن حسابش میکنیم ولی به نفع برادر شقیقه اما دردادر بهش چیزی نمیدیم چون اگر حسابش نکنیم پدر بزرگ یک دوومه مالو میبره و یک دوومه شو برادر شقیقه میبره ولی ما میایم برادر پدری رو به نفع برادر حقیقی حساب میکنیم یک سفونو میدیم به پدر بزرگ دو سفون باقی میمونه بعد از اون دیگه به برادر پدری نمیدون برادر شقیقه میبره به الاعدادی برادر پدری رو هنگام حساب کردن حساب بکن هنگام شماردن چرا؟ چون این پدر بزرگ نیست که اونو از میراس محجوب کرده بلکه این برادر شقیقه است که اون رو محروم کرده است اما برادر مادری رو نه خود پدر بزرگ محجوبش میکنه لذا حساب نمیشه وارفض بني الامی مع الاجدادی فرزند مادری رو همراه با پدر بزرگ حساب نکن ردش کن وحکم على اخوتي بعد العدی وحکم کن بر وحکم کن بر برادران پدری بعد العدی بعد از این که اونا رو حساب کردی یعنی بعد از این که اونا رو حساب کردی همراه با برادران شقیقه تا به نفع برادران شقیقه باشه اینجا دیگه بیاو پس وحکم الال اخوتی بعد الادی و حکم میکن بر برادران پدری بعد از حساب کردن حکم که فیهم اندفق دل جدی همانتون حکم میکنی هنگام نبود پدر بزرگ یعنی زمانی که پدر بزرگ نباشه چه حکم بیدی؟ حکم اینه که برادر پدری چی میشه؟ ساقط میشه از میراس بعد از این که توضیح شدادیم بعد از این که اومدیم بر علیه جد برادر پدری رو حساب کردی بعد از این به حکمشون رو بده همین هست که حکمشون چیه دیگه همانطور چه پدر بزرگ باشه چه نباشه ساقط میشن اگر پدر بزرگ هم نباشه باشه باز هم ساقت میشن نباشه ساقتن پس اگر پدر بزرگ نباشه ساقطن، باشه هم ساقطن وحکم الال اخوتی بعد الادی و حکم بر برادران پدری بعد استصحاب کردن حکم کفیه هم اندفقت الجدی همان حکمی که در نبود پدر بزرگ اون حکم رو میکردی اون حکم چه بود؟ همینی بود که برادران شقیقه برادران پدری رو چکار میکنن؟ ساقطشون میکنن، به عبارتی محجومشون میکنن این بود مسئله جدو الال که دو حالت به شکل خلاصه بود. زمانی که با آنها صاحب فرض وجود داشت و زمانی که صاحب فرض وجود نداشت اگر صاحب فرض وجود نداشت می‌بینیم آیا مقاسمه به پدر بزرگ هست یا سدس کل مال هست هر کدوم به نفش بود پدر بزرگ اونو می‌دید اما اگر صاحب فرض بود می‌بینیم آیا مقاسمه پس مقاسمه در هر دو صورت وجود داره آیا مقاسمه به پدر بزرگ آیا سلس باقی مانده بعد از ایک صاحب فرض ارسو برده باقی مانده آیا یک سفون به باقی مانده بنفشه یا نه یک شیشوم کل مال بنفشه که با مثال اینا رو توضیح دادیم ولی یک ای که مربوط به مسئله جد و اخوه هست اما یک استثناء هست یه حالت خاصی که بشه میگن مسئله خاص به نام اکدریه اونو هم مثال این بحث توضیح میده و بحث رو تموم میکنیم والاخت لا فرض مع لها بگه خواهر فرضی همراه با جد نداره بله قبل گفت که خواهر بگه اگر وجود داشته با پدر بزرگ پدر بزرگ بهslice برادر خواهر رو بیا چکان میکنه عصبش میکنه اصال عصب به غیرش میکنه بگه فرض مع لها خواهر صاحب فرض نیست همراه با پدر بزرگ اگه تحت لفظزی کوری ویجوری میشه و خواهر فرزیله دارن همراه بااپه در بزرگ فیماعاددا مسئلت تبل ها جز در یک ئله کمون خب خودش در آخر میشه. جز در یک ئله که ارکانشکی هست که او رو تکمیل میکنن ز و جون و مر و در یک مسله ای که شوهر وجود داره؟ مادر وجود داره و هما و آن دو یعنی پدر بزرگ و خواهر. پس جد در یک مسئله اون ای که ارکانش شوهر است مادر است پدر بزرگ است و خواهر در این مسئله مسائل عمومی دیگه جد و اخوه جوری بودن که با صاحب فرض رو دادیم باقی پدر و دو برابر خوهر ما یه می کردیم بس برادر خواهر. لذكر مثل حذر العنسة وله انجانا انجان فارغ ميكون مخاطرين مش بيجان مسلين خاص بنامه اكدارية بيجي والاخت لا فرز مع الجد لها خاهر فرزها من راهبا بدر مزرق نظره فيما ادا مسألة كملها جزء در يكي مسألة كونار كانش كيها سمونو كي كامل بيكون زوج شوهر ما در وهما وعندو يعني بدر مزرق وخاهر فعلا فخير امت اعلامها پس بدان که بهترین امت داننده های آن هستند الله های آن هستند تو عرفو یا صاحب الکدریه اون مسئله که اینها ارکانش باشند چی اسمش هست تو عرفو چناخته بیشه به اکدریه یا صاحب ای صاحب من این هم مناده هست که ترخیم اگر یادتون بحثن نهبیه کاری بش نداریم در آسیا صاحبی هست که حس شده. بس تو عرف یا صاحب الکتریه شناخته میشه ون مسئله صاحب من به و هیا به ان تعریفها حریه. اون مسئله به اینکه اونو بشناسی شایسته هست. حریه شایسته. و هیا و مسئله به بان تعریفها به اینکه اونو مشناسی حریه شایسته. خوب. اون کس فی نصف لها. پس فرض خواهر چقدر میشه نصف ففرض النصف لها پس مشخص میشه تعیین میشه نصف لها برای خواهر و صدس له و یک ششم برای پدر بزرگ پس در این مساله اکدریه خواهر با پدر بزرگ قرار بگیرند اصلا اخوه با پدر بزرگ قرار بگیرند سهمیه ندارند جز در مسئله اکداریه که سهم ابتدا برای خواهر مشخص میشه که یک که،, که یک دومه پس در این مسئله خاص ما یک دوم به خواهر میدیم و یک شیشوم به پدر بزرگ حتی تعول به الفروز المجمله تا این آل پیش بیاد با مجموعه فرضها چطوری؟ موقعی که در مسئله وجود داره مادر پدر بزرگ و شوهر مسئله از چند گرفته میشه از یک شیشو که سهمیه پدر بزرگ است یک دوم رو میبره شوهر یک دوم رو میبره خواهر. مال تمام شد اول اصلا چی مسئله ای رو میگن اول اون رو میگن که سهمه افراد از ترکه بیشتر باشه از مال بیشتر باشه موقعی که یک دهمو برد شوهر یک دهم دیگر رو برد خواهر و چیزی باقی نموند پس آلش میکنیم یعنی به که اینکه مسئله رو از 6 بگیریم از نهش بگیریم ولی سهروا سر جواب شوند هستن قبلا از شش طرف یک دهم میبرد الان از نه میبره که کمتر گیرش این اینو میگن آل خب شوهر میبره یک دوم، خواهر میبره یک دوم، مادر میبره یک ثوم، پدر بزرگ میبره یک شیشون. پس مسئله از شیش که بگیریم، اول میشه به نه. اینجا قبلا از شیش شوهر رو ستا میدادیم، مادر رو دوتا میدادیم، پدر بزرگ و یکی و خواهر رو ستا، الان از نه. اینو میگن اول. خب، حالا. گیر مادر میاد گیر شوهر میاد سه مادر دو پدر بزرگ یک خواهر سه از لخته بعد از این که سهمشون مشخص شد میراییم سهم پدر بزرگ و خواهر رو با هم جمع میکنیم چرا؟ چون اگر ما خواهر رو یک دو بدیم و پدر بزرگ و یک شیشو اینجا بحث عصبه هست نباید که زن از مرد بیشتر ببره در حالی که پدر بزرگ کمتر میبره از خواهر. پس میاییم سه خواهر با اون یکی پدر بزرگ و با هم جمع میکنیم میشن چارتا میشن چند تا چارتا اینجا دیگه میایم چیکار میکنیم للذکر مثل حظ الأنثيين میکنیم للذکر مثل حظ الأنثيين ثم يعودان الى المقاسمه بعد از اینکه سهم اینا رو با هم جمع کردیم بر برمیگردیم به مقاسمه مقاسمه دیگه چیه همونیه که تقسیم میشه به للذکر مثل حظ الأنثيين پدر بزرگ و دو نفر حساب میکنیم خواهر و یکی میشه 3 نفر بله یا به عبارتی پدر بزرگ دو برابر خواهر و یک برابر کما ما با همان طور که در بحث مقاسمه رد شد فحفظه و شکر نازمه پس حفظش کن و تشکر نازم رو بکن حالا در این حالت در این حالت در اکدریه خواهر نمیتونه ساقط بشه کسی نبود حاجبش بکنه از طرفی نمیتونه از پدر بزرگ هم بیشتر ببره به این خاطر زید رضی الله عنه اومد این مسئله رو برخلاف مسائل دیگر به این شکل تقسیم کرد نمیتونه خواهر ساقط بشه و نمیتونه از پدر بزرگ بیشتر ببره لذا ابتدا اومد سهم ها رو مشخص کرد بعد از اون اومد و سهم خواهر مثلا از شیش اول شد به نو. سهم خواهر رو پدر بزرگ و با هم جمع کرد بعد از اینکه جمع شروع کرد لذذکر مثل رو حد کرد. این بود از مساله اکداریه و مساله جد و اخوه که خیلی جالب توضیح داده بود.